زمیمه فصل دوم تداوم روابط دوستانه تموچین تا پایان عمرش پاول راچنفسکی در کتاب چنگیز خان زندگی و میراس او این داستان را از تاریخ سری مغالا نقل کرده است دزدان همان جنگجویان قبیله جورکین در روشنایی کامل روز در کنار اردوگ هایلون پدیدار شدند و هشت عصب اختراکی در جلوی خیمه بسته شده بودند در مقابل چشم همه خانواده دوزدیدن. برای خانواده فقط یک اسب مانده بود که بلغوتای آن را سوار شده و به شکار موش خورما رفته بود. بلغوتای هنگام غروب که به خانه بازگشت خواست تا به جستجوی اسب های دوزدیده شده برود. غسار نیز پیشنهاد کرد که چنین کند ولی تموچین این پیشنهاد را رد کرد. او از آنها بزرگتر بود و هرچند دلیل رو بی پروانه بود باید به وظیفه خود عمل می کرد. او سوار عصب بلغوتای شد و رد پاهای عصبهای دزدیده شده را دنبال کرد. در راه با بورچوی خورد سال، پسر سیزده ساله نایان سروتمند، عضوی از قبیله آرولات که روابط دوستانهی با یسوکای برقرار کرده بود، برخورد کرد. هنگامی که بورچو به هدف سفر تموچین پی بود، دلوه چرمی شیر و ملاقه خود را به زمین انداخت و به تموچین پیوست. آنها از پای اخته را پیدا کردند و به واسطه تاریکی شب از دست دشمن گریختند. تموچین در صدت برامد تا به بورچو به خاطر کمکش پاداش دهد. او می ای دوست، آیا بدون تو هیچگاه اصبانم را پیدا می بیا در آنها شریک شویم چند تارا می خواهی ولی بورچو این هدیه را رد می کند من به تو پیوستم زیرا دیدم که در درد سر افتاده ای و به کمک احتیاج داری آیا اکنون باید صح بگیرم چنان که گویی این یک غنیمت بوده است چه چنو خدمتی به تو کردم من به هیچ چیز احتیاج ندارم به این ترتیب دوستی تا آخر عمر میان چنگیز و بورچو که یکی از حامیان اصلی چنگیز در مبارزه برای رهبری قبایل بود برقرار شد